اصل و سرفان. تلگرافی با تلفن حرف زدم که مبادا مامان بابا وسط حرفم موچمو بگیرن البته نگرفتن آقای آنتولینی آدم خوبی بود گفت اگه میخوام همین الان را بیافتم برم اونجا منم خودشو زنشو بیدار کردم چون خیلی طول کشید تا جواب تلفنو بده. اول از همه ازم پرسید: مشکلی پیش اومده؟ گفتم نه. البته گفتم از بنسی اخراج شدم. گفتم بد نیست بدونه. گفت: آه خدای بزرگ. خیلی شوخه. گفت: اگه دوست دارم برم پیشش. آقای آنتولینی بهترین معلمی بود که تا الو داشتم. سنی نداشت تقریبا همسن و سال برادرم دیبی بود آدمی بود که میشد بدون اینکه کار به بی احترامی بکشه باش هر گپی بزنی تنه کسی هم بود که آخر سر رفت و جسد و پار شده جیمز کستلو برداشت نبز کستلو گرفت و بد کتشو رو درآورد و اندخ رو شد تمام راه تا درمونگا بردش حتی براش مهم نبود کتش خونی مالی شده وقتی برگشتم اتاق دیبی فیبی خانم رادیو رو روشن کرده بود موسیقی تندی پخش می شد. صداش کم بود که مواد خدمت کارمون بیدار بشه باید می دیدیش. از زیر پتو در اومده بود و عین اینا که یوگا کار میکنن نشسته بود و رو تخت و موسیقی گوش می داد خیلی, خیلی خوردنی شده بود گفتم میایی برقصیم وقتی فینگلی مینگلی بود بهش یاد داده بودم کارشو خوب بلده خودم بهش چندتا حرکت درست حسابی جوندار یاد داده بودم کفش باده. خب درشون میارم عین فنر از جاش پرید و منتظر شد تا کفشم رو در بیارم بعدم رفتم رو تخت کارشو خوب بلد بود خودم اینو که آدم بزرگی با بچه برقصه دوست ندارم از دور که نگاه کنی حسابی زایه است. مثلا وقتی رستورانی جایی باشی و یکی رو ببینی که با بچه داره اون بسط میرخصه واقعا کار زاییه. معمولا لباسی که تن بچه هاست لباس مناسبی نیست و بچه ها نمیتونن خوب برخصن. همینش اشزایه است. ولی من که با فیبی بیرون نمیرخصیدم. فقط تو خونه باش میرخصیدم همین. تازه فیبی فرق داشت. کارشو بلد بود. هر ضربی رو میتونست دنبال کنه. حتی اگه زیادی نزدیکش می شدی فرقی هم نمی کرد پاد دراز باشه یا نه کم نمی آورد دوتایی عین هم جست گرفتیم و منتظر اورکستر شدیم که شروع کنه خنده بود بودن چهار تا آهنگو با هم رقصیدیم و بعدش رادیو رو خاموش کردم فیبی باز پرید رفت زیر پتو از ازم پرسید بهتر شدم نه؟ حسابی؟ دوباره نشستم کنار دستش رو تخت نفس کم آورده بودم به خاطر این سیگار لعنتیه که نفس کم میارم ولی فیبی اصلا کم نیورده بود یه گفت دست بزن رو پیشونیم چرا؟ دست بزن فقط دست بزن دست دادم ولی چیزی احساس نکردم گفت یکم داغ نیست؟ تب ندارم؟ نه؟ مگه قراره تب داشته باشی؟ آره میخوام تب کنم دوباره دست بزن؟ دوباره دست دادم و باز چیزی احساس نکردم ولی گفتم گمونم حالا دارم یه چیزایی احساس میکنم دوست نداشتم احساس کم بود محبت کنه سرتکون داد که دوست دارم تو دم و سنج بیشتر از چیزی که هست نشون بده تو دم و که این حرف رو بهت زده فیبی؟ آلیس هومبارگ بهم یاد داده میتونی پا تو جمع کنی و نفست تو حبس کنی و به یه چیز خیلی خیلی فکر کنی مثلا به شفاجی چیزی بعد پیشونی تو اونقدر داغ میشه که میتونی باش دست یکی رو بسوزونی عجب حرفی دستم و یه طوری گرفتم که انگاری خطری حس کردم و سریع از رو پیشونیش برداشتم <تصفيق> ممنون که بهم گفتی وای نه من که نمیخواستم دست تو رو بسوزنم قبل از اینکه داغ میشد جلوشو میگرفتم <سخ> بعد این برق از جاش پرید و نشست رو تخت این زهرم و آب کرد <تصح> چ شد فیبی بلند گفت در خون هست خودشونن جنگی از جان پریدم و رفتم چراغ رومیز و خاموش کردم بعد سیگارم از رو کفش برداشتم و انداختمش دو جیبم دست تو هوا تکون دادم که دود سیگارا بره بعد اونجا سیگار میکشیدم بعدش کفشم رو برداشتم گذاشتم تو کمود و خودم رفتم تو کمود و در بستم پسر قلبم اومده بود تو دهنم صده این شنیدم که اومد تو اتاق گفت فیبی بس کن دیگه دیدم چراغت روشنه شنیدم فیبی خانم گفت سلام خوابم نمیبره خوش گذشت مامان گفت. محشر بود. ولی از دش می حد زد که زیادم بهش خوش نگذشته بهش خوش نمیگذشت چرا خوابت نبرد؟ سردته؟ نه هوا خوبه. فقط خوابم نمیبره. فیبی؟ تو اینجا سیگار کشیدی؟ لطفا راستشو بگو دخترم. چی؟ شنیدی چی گفتم؟ یه سانی یه سیگار روشن کردم یه پک هم نزدم بعد از پنجره انداختمش بیرون ممکنه بفرمایید چرا خوابم نمیبرد هیچ خوشم نمیاد از این کارو بکنی یه پتو دیگه میخوای؟ نه ممنون شب بخیر تابلو بود میخواد از دست مامان خلاص شه مامان گفت فیلم چطور بود عالی بود همه چی خوب بود جز مامان آلیس هی خمی شد رو سر آلیس و هی حالشو میپرسید با تاکسی برگشتیم بزار دست بزنم رو پیشونید سرما نخوردم. علی سرما نخورده بود. مامانش علکی گیر میداد. خب پس دیگه بگی بخواب. شام چطور بود؟ افتضاح. دیدی که بابات گفت دیگه این کلمه رو به کار نبری. کجاش افتضاح بود؟ گوشت گوسمند تیکه شده به اون خوشمزگی؟ تمام راهو تو خیابون لکستون پیاده رفتم تا بتونم. غذا خوب بود ولی چارلین هر بار میخواست چیزی بزاره رومیز میز میداد تو غذا. هر دفعه این کارو میکرد تو همه چی فوت میکرد و این نفسشو میدادون تو خب دیگه بخواب مامانو ببوس. ببینم فیبی دعا خوندی؟ آره خوندم شب خیر. شب خیر. دیگه واقعا بخواب سرم خیلی درد میکنه بیچاره همیشه خدا سردرد داشت فیبی گفت چند تا اسپیرین بخور هولدن چهارشنبه میاد خونه مگه نه؟ تا جایی که میدونم آره حالا قشنگ برو زیر پتو. صدای بیرون رفتن مامان و بسته شدن درو در شنیدم یه دو دقیقهای صبر کردم بعد اومدم بیرون اتاق اینقدر تاریک بود که خوردم به فیبی از تخت بیرون اومده بود که به هم مامان رفته گفتم دردت گرفت خیلی آروم صحبت میکردیم چون هم مامان هم بابا خونه بودن بهش گفتم بعد زودی برم تو تاریکی لبه یه تخت رو پیدا کردم نشستم روشو و کفشم رو پام کردم خیلی به هم ریخته بودم فیبی زیر لب گفت الان نرو سب بخوابن به خوابن نه همین الان بهترین وقته مامان تو دست شویه بابا هم داره اخبار رادیو رو گوش میکنه آره الان بهترین وقته اونقدر عصبی بودم که نمیتونستم بند کفشم رو ببندم این نبود که مثلا اگه گیر می افتادم اعدامی چیزی می نه ولی این ناجور می و این واقعا خوب نبود به فیبی گفتم معلومه کجایی؟ اونقدر تاریک بود که نمی دیدم کجاست اینجا کنار دستم با بود ولی حتی نمی دیدم کجاست وزایلم تو راه آهنه ببین فیبی تو پول داری من هیچی ندارم فقط پول گریز مزمه پوله هدیه واسه خودم هنوز خرید نکردم آن پول هدیه شو نمیخواستم میخوای من پول گریز تو نمیخوام فیبی میتونم به هدیه یکم قرض بدم بعد صدای باز شدن کشوی میز دیبیو شنیدم صدای باز شدن هزار تا کشو دستی که تو کشو میگردن واقعا تاریک مطلق بود اتاق تاریک تاریک بود اگه بری که نمیتونی منو تو دادر ببینی وقتی اینو گفت صداش میلرزید میام تا موقع نمیرم خیال گردی نمیام تو ببینم برنامه اینه که میرم خونی آقای آن دولینی اتاستشم بشم اونجا میمونم بعدش احتمالم میام خونه اگه تونستم بهت زنگ میزنم یا اینو بگیر دستش رو جلا آورده بود که پولارو به هم بده ولی دستم رو پیدا نمی کرد پولا رو گذاشت تو دستم نه بابا همش رو نمی خوام فقط به یه دو دلار بدی کافیه جدی میگم بیا بگیرش خواستم بقیهش رو پس بدم ولی قبول نکرد دلار رو پنج سنت نه نه نه نه سنت یکمشو خرج کردم یه بیا و گریه گرفت نمیتونستم جلوی اشکم رو بگیرم وقتی زدم زیر گریه فیبی خیلی ترسید اومد طرفم خواست جلوی گریم رو بگیره ولی وقتی یادم میزنه زیر گریه دیگه نمیشه جلوی گریهش رو گرفت هنوز لبه تخت نشسته بودم دست انداخت دور گردنم من دست انداختم دور گردنش بند نمی اومد گفتم الانه که از شدت گریه به ترکم میچنه فیبی زهر درک شده بود پنجره کفتی هم باز بود و لرزی که افتاده بود به جونشو حس می کردم وقت یه لباس نازک خوابتنش بود آره سعی کردم بفرستمش که بخوابه ولی نمی رفت بلاخره گریم بند اومد اما خیلی خیلی طول کشید بعد دوگمه های کتم بستم بهش گفتم که باش تماس میگیرم گفته که بخوام میتونم همینجا پیشش بخوابم ولی گفتم بهتره که برم چون آقای آنطولینی منتظرمه کلا شکاری ما از کتم در آوردم و بهش دادم از این مدل کلا خوشش میمد نمیخواست بگیرتش ولی مجبورش کردم مطمئنم میذاش کنار دستش میخوام. بهش گفتم اگه شد به زنگ میزنم و بعدم رفتم از خونه بیرون رفتم خیلی ساده تر از تو اومدم بود چند دلیل داشت اولین اینکه دیگه برام مهم نبود گیر بیفتم اصلا برام مهم نبود گفتم اگه گیر افتادم افتادم دیگه حتی دوست داشتم گیر بیافتم بیخیال آسانسور شدم و از پلا برگشتم پایین از پلای پشتی از بس که تو راه رو کیسه زباله گذاشته بودن صد بار نزدیک بود زمین بخورم و گردنم بشکنه ولی توریم نشد آسانسورچی حتی چشمشم به هم نخورد گمونم هنوزم خیال میکرد پیش دیکستاینینا